صفحه دو فرنگی معاب به طرف پسرک برگشت گفت: کسی خبر نداره پسر جون. برگرد برو چیزی نیست پیداش میشه. برگرد برو یاز. لابد حالا بابات برگشته رسیده. پسرک گفت: «من باید به تهران بروم. امیدوار بودم شما کمک جملهاش را تمام نکرد. فرنگی معاب با اخم تمسخر پسرک را برانداز کرد. اوهو اوهو بی سر و پای پر وقع پسرک با خجالت سرش را پایین انداخت از گوشه چشم به سوی خانمهای توی کالسک نگاه کرد امیدوار بود آنها این اهانت‌ها را نشنیده باشند سریا خانم حالا چاختورش را کمی بالاتر زده بود و نیمه پایین صورت جوان سفیدش پیدا بود از زیر چخچور پسرک را نگاه می کرد که با شلوار و پیراهن سفید خاک و موهای قهوه ای از شدت آفتاب بیرنگ بور شده، صورت سوخته و تاور زده و دستها و پاهای زخم و زیلی زیر آفتاب ایستاده بود. گفت، هوشنگ میرزا میرزاخان؟ بله سرعی خانم، میگم گناه داره، به مشخداداد بگو پهلوی خودش سوارش کنه. بوگند عرق و کسافتش اسبار رو خفه نمیکنه؟ نه، سواب داره. غریب سرگردون و بیچاره است. بگو برسونش تهران سر بازارچه. فرنگی مهاب سرفه کرد و با اکراه حسای زرین دستش را بالا آورد. به مش خداداد کالسکچی اشاره کرد که او را سوار کند. پسرک از آنها تشکر کرد، دوید رفت خورجین و بقتش را برداشت و تر و فرز آمد. مشخداداد کالسکچی با اخ و پف از بوی تن و وضع کسیف پسرک مدتی قرقر کرد. اما بالاخره به او جا داد و پس از چند دقیقه دیگر که از هم خستگی در کرده بودند، همه راه افتادند. جاوید هیچ وقت در عمرش سوار کالسکه نشده بود، ولو اینکه که سری باشد و دم دست کالسکچی بنشیند. مشخداداد کالسکچی بعد از چند دقیقه بدخلقی اول آدم وراجی از آب درآمد که دو تا گوش مفت میخواست و گیر آورده بود. از وراجی های کالسکچی بود که پسرک کم کم فهمید دست قضا و قدر آن روز او را سر راه فامیل ملک آرا گذاشته است. کالسکچی برای او تعریف کرد که سرگا خانم که باسته شده بود پسرک را سوار کنند، دختر بیوه ملک آرا بود که شوهرش در قم دفن بود. و خانم کوچک هر ماه یک بار به قم می رفت تا هم سر قبر شوهرش فاتحه بخواند هم زیارتی کرده باشد. شوهر سرعی خانم میرزا مشیرخان نزهت و دوله، از شاهزادههای پیر قاجار و دو سال بعد از عروسی با سرعی خانم مرده بود. دختر ملک آرا بیوه مانده بود و در خانهی که از نزهت و دوله به او رسیده بود با خدمه خودش زندگی میکرد. خانوم دیگری که توی کالسک بود، فروغ زمان، خواهر شوهر سریا خانم بود که او هم گهگاه همراه سریا خانم به قم می آمد. هوشنگ میرزا، فرنگی معاب هم، البته شوهر فروغ زمان و یکی از رؤسای وزارت معارف و اوقاف بود. وقتی پسرک فرصت کرد چند کلمهی وسط وراجیهای مشخدادات حرف بزند، پرسید آیا او از فیروزاقا یزدی که برای خانه ملک آرا آورده بود خبری داشت؟ مشخدادات از این بابت خبر درستی نداشت. خانه ارباب او هوشنگ میرزا در محله دیگری در تهران بود، محله دروازه دولت، خانه ملک آرا طرف بازار در محله وزیر دفتر بود و مش مشخداداد از تمام ریزکاری‌های خدمه و مباشرین خانه ملک آرا خبر داشت. آمدن باغدارها و کسبه شهرستانی و آوردن صندوق میوه و خاربار به در خانه رجال و پول گرفتن هم عادی بود. نه خداداد از فیروز آقا خبری نداشت. به هر حال پسرک خوشحال بود که به زودی به تهران و به پدرش می رسید و نیایش پروردگار را کرد که سرانجام پس از بیست و سه روز این سفرشون به تهران می رسید. کالسکه از دل جاده خاکی از قاسم آباد و کهریزک گذشت. وقتی بری و جاده دور صحن شاهزاد عبدالعظیم رسیدند مشخداداد خان کالسکه را نگه داشت. آمد پایین. رفت از هوشنگ میرزا پرسید آیا خانم ها میل دارند برای زیارت توقف کنند یا ادامه دهند؟ پسرک شنید که سریا خانم گفت بهتر است ادامه دهند و تا غروب نشده به شهر برسند. همه خسته بودند. تنگ قروب در تهران بودند. پس از گذشتن از درواز قار و از دو تا خیابان خاکی دراز و دور زدن از میدان اعدام که با حوض کوچک و کثیفش خالی بود، کالسکه از خیابان جلیلآباد بالا آمد و دست آخر مشخود یک جا نگه داشت و پسرک را با خورجین و بوقچش جلوی دهنه سیاه یک بازارچه تنگ و تاریک کنار مسجد سید نصرالدین پیاده کرد. گفت خونه حضرت اشرف ملک آرا از اون طرفه برو بپرس نشونت میدن اما حالا شبیه نها صبح برو بزمجه وگرن نزو گوشات گوشاتو میبرن میذارن کف دستت و از پا حیزد و اون ناگهان خودش را مات و کوچک وسط خیابان ناشناس شهر تاریک تنها دید. دلش میخواست فرصتی میکرد چند کلمه ای درباره پدرش از یا خانم حرف بپرسد. آدم های توی کالسکه پیاده نشدند، حتی از شیشه کوچک کالسکه هم به او اشاره و یا نگاهی نشد. مشخوداداد و از شلاق زد، افزارها را تکان داد، کالسکه راه افتاد و در تیرگی های خیابان خاکی جلیل ناپدید شد و پسرک را تنها پشت سر گذاشت. هفت صفحه 25 برخلاف هرچه از تهران خیال کرده بود، امشب او تهران را به قوله آشفته می دید. شهری از خاک و چوب و کاشی، دل مرده، سوت و کور، ولنگ و باز، در و دیوارهای کوتاه و پست، خالی، بیچراغ، چراق، بی زندگی و بی اتنا. و این چیزی نبود که او برای پایتخت کشور باستانی و شاهنشاهی بزرگ تصورش را می کرد. دکانهای خیابان جلیلاباد سر شب همه بسته بودند، فقط اندک روشنایی شمعی از شبستان مسجد سید نصردین به چشم میخورد. در خیابان خاکی، مردم تک و توک با رخت و لباس بیقواره رد میشدند. گهگاه هم یک درشگه یا یک گاری لکنتی با اسب یا یابوی خسته میگذشت. تمام شب پای دیوار مسجد بین خواب و بیداری چون باتمه زد و در فکر پدر و مادرش بود. دمدمه با بابو و صدای جانوری از خواب پرید. گربه سیاه پیر و کسیفی او را بومی کرد. حراسان تکان خورد، گربه را کنار زد، بلند شد ایستاد. بیدرنگ و از روی قریزه به سوی بازارچه راه افتاد. تیره ابرهای تیره، هوای خاکالود و دمکرده‌ای روی محله سایه گستر بود. از تک و توک مردمی که دنبال نان و پنیر و حلیم از خانه‌ها بیرون آمده بودند، سراغ خانه ملک آرا را گرفت. مردم جسته و گریخته به او نشانی دادند و او پرسان پرسان از بازارچه ها و پس کوچه های چپاندرقیچی گذشت. از محله های چاله سار و مصطفی به گذر وزیر دفتر آمد. پس از دو ساعتی که با ویلانی و سردرگمی پیچ و تاب خورده بود، سرانجام به باغ و خانه ملک آرا رسید. که با نمای بزرگ و شگفتاوری در میان این بازارچه های پست به صورت قصر و باغ درندشتی از سایر خانه ها مشخص بود. باغ و خانه ملک آرا که تمام محله را گرفته بود و جلو آن تکیه یا میدانگاهی بزرگ نیز قرار داشت دارای دو در چوبی منبت بود. یکی بزرگ و دیگری بسیار بزرگتر. از بالای دیوارهای گچی باغ شاخه های پیچ امین و دوله و, یاس و مو آویزان بود. حتی از بیرون، از توی کوچه، در انتهای باغ سرستونها و تاق و ایوان امارت دو طبقه خانه، با گتباری های زیبا و رنگارنگش پیدا بود. پسرک احساس اندکی شادی کرد، پدر و مادرش هر پیش آمد بدی که داشتند، دست کم در چنین جای بزرگ و صفایی زندگی می کردند. جلو رفت، با ترس و لرز کوبه آهنی در بزرگ را سه بار کوبید. پس از مدتی مردی آمد در را باز کرد این مرد چاق و زرد چهره و بیمارگون بود با چشمهای تنگ و ریز عرقچین کثیفی عقب کله تاس و لک و دارش بود و قبای خاکستری رنگی به تن داشت که در ناحیه کمر شال خاکستری و کثیف آن را روی شکم باد کرده می چسباند، تمام وجودش زرد و خاکستری و پف کرده بود دستهایش پشت کمرش به هم چسبیده بودند با اخم سرتاپهای پسرک سفید پوش دهاتی را برانداز کرد گفت تو بودی در زدی تخم جن؟ کنگار در آن صبح دولت قاجار در قلباب این خانه به دست پسرک عجیب دهاتی نابجاترین کارها بود بله ای از پدر سوخته دستهایش را از پشتش آورد جلو در یک دستش یک چماغ چوب آلبالو بود. کار داشتم آقا. راحت را بکش و برو گم شو. پدر سوخته. چماغ را با تهدید بالا آورد. من پسر فیروزآقا تاجر یزدیم که برای آقا بار آورده بود. عرضی داشتم آقا. کار داشتم. دست زدم زردنبو با چماغ آلبالوش در هوا معلق ماند. دهان گندهش هم باز ماند. سرتاپای پسرک را نگاه کرد گفت دوباره بگو چی گفتی پسرک تکرار کرد نوکر زردنبو باز مدتی به چشمهای پسرک زل زد بعد با اخم سرش را برگرداند اسمحاض و خشم دندان‌های قهوه‌ای‌اش را که عین هسته خرمای پوسیده و خاک خورده بودند در بالا و پایین آروارش نمایان ساخت سرش را برد عقب تف کرد از اللهی فرستاد، انگاری که کفر ابلیس را در یک وجبی خود دیده باشد. دست آخر با اکراه گفت، برو، برو همون گوشه کوچه به تمک تا حضرت اشرف بیدارشن. پسرک نفهمید، با اشتیاق پرسید، پدر و مادر من اینجا هستند؟ نوکر زردنبو گفت، گفتم برو گوشه کوچه به تمک، بله چه فرمودید؟ بوزینه گبر نجس، مگه زبون نمیفهمی؟ گفتم صبر کن تا آقا بیدارشن یا صبر کن تا مباشرشون میرزا از قرخان تشریف بیارن چشم و تکلیف تو رو روشن کنن تکلیف؟ برو گمشو بشین خفشو پسرک پرسید پدر و مادر من اینجا هستند یا نیستند زردنبو با چماق آلبالو توی دهان پسرک زد گفت این اممال زبون درازید با یک تف دیگر جلوی پاهای پسرک انداخت، در را به هم زد، بست و کلون کرد. بعدها جاوید فهمید که این آدم قلوملی خان نوکر باشی، همکاره حیات بیرونی و آشپزخانه و آبدارخانه و باغ ملک آرا بود. خونی را که در دهانش جمع شده بود گرچ داد، آمد گوشه تکیه جلوی خانه نشست، بخچه و خرجین دستش را روی سکویی گذاشت. نمیدانست حالا راستی باید چه کار کند؟ جز صبر صبر کند تا آقا بیدار شوند، یا تا مباشر آقا، میرزا از هر که بود، تشریف بیاورند. اگر او با اخلاق و مغز این آدمها آشنایی داشت، باید همکنون میفهمید که بوی پیش آمد بدی در هوای کسیفی بود، اما او بچه خام و ساده ای از آتش کده دشت های یزد بود، یک ساعت گذشت. مرد لاغر و درازی با لباده‌ی سیاه، کلاه سیاه دراز و پای چلاق و عصا از یکی از کوچه ها به سوی خانه ملک آرا آمد. جلوی خانه بزرگ ایستاد، سه بار دعا خواند و دور خودش در هوا فوت کرد. جاوید او را مانند هر موجود دیگری که جلوی خانه ملک آرا جنبیده بود نگاه کرد. صورت این مرد کوسه و پیر و بیحال بود. اما چشمان ریز و ظل و بیموجش مانند چشمهای کرماهی می درخشید. دفتری زیر بغلش بود و پسرک حد زد لابد او باید میرزا از مباشر باشد. چلاق سیاه جلو در خانه ملک آرا درزد. مدت زمانی که صبر کرد تا در باز شود، انگشت شستش را به نوبت پشت هر کدام از های دماغش گذاشت و آنها را یکی پس از دیگری با بی به طرف دیواری که پسرک آنجا نشسته بود خالی کرد. بعد یا گفت و داخل خانه شد و در دوباره بسته شد. یک ساعت دیگر هم گذشت. چشمهای جاوید به در خانه دوخته شده بود. روز سمج و بی خودش را روی بازار چه میکشید؟ جلو تکیه، مردهای قبا پوشیده، زنهای چادرچاقچوری، دورگردهای دست، فروش کاسه بشقابی و کچلواری، اولاقی بابار پیاز و میوه، گدا و فالگیر می آمدند و می رفتند. زندگی زیر گذر و زیر دفتر ادامه داشت. نزدیک ظهر در دوم خانه ملک آرا در بزرگتر باغ باز شد و یک نفر با آفتابه آمد جلوی خانه را آب پاشی کرد. این مرد نه نوکر زردنبو بود نه مباشر چلاغ. این یکی کتوله بدحیبتی بود باریش و سیبیل فلفل نمکی و لباس مندرس باقبانها. یا چیزی شبیه لباس کالسکچی میرزا حوشنگ خان که پسرک دیروز در حسن آباد دیده بود. پسرک گوشه کوچه نشست و کتوله ریشو با پاشی شدن جلوه باغ ملک آرا را تماشا کرد. سکتولهی که از یک گوشه پیدایش شده بود و مشتاقانه خودش را لای پاهای نوکر ریشو میمالید، ریشو را عصبانی کرد. ریشو آن را لگت زد و انداخت. بعد گردنش را گرفت، بلند کرد، به دیوار کوبید، کشت. بعد لاشه جانور را در جوی آب انداخت و آب آن را برد. جاوید بعدها فهمید که این مرد ابوتراب، تراب، کالسکچی و پادوی مخصوص ملک آرست. بعد از چند دقیقه که آب و سک تمام شد و کتوله ریشو رفت، ناگهان صدای سم اسبها و چرخهای کالسکی از ته باغ آمد. پسرک پرید. ایستاد، سر کشید و دید که به راستی کالسکه از در باغ بیرون آمد. کتوله ریشو حالا بالای کالسکه نشسته بود، شلاغ میزد. کالسکی وسط تکیه دور زد و به طرف کوچه دست راست پیچید. پسرک جلو دوید، اما فقط چند ثانیه سرکله ملک آرا را دید که رد شد. باریش توپی و سیبیل سیاه. چشف های خیلی درشت، صورت باد کرده و کلاه بلند ناصر الدین شاهی. لحظه بعد کالسکه با سرعت از کوچه سربالایی چهل هزار بالا رفت و غیب شد. و باز هیچی، جز معتل شدن و بلا تکلیف ماندن گوشه کوچه. حالا باید چه کار می‌کرد؟ خستگی و گرسنگی و تشنگی به کنار دلش بد جوری شور پدر و مادرش را می‌زد. که پشت این دیوارها بودند و بیشک آنها هم ناراحتی داشتند. پس از رفتن ملک آرا از حیات بیرونی صدای دعوا و جنجال نوکرها و کلفتها بلند بود و صدای بازی و فوش و کتککاری بچه های شلوق می که لابد تقم و ترکی نکرباشی بودند. دو ساعت دیگر هم گذشت و تنها اتفاقی که افتاد این بود که یک دست مترب و لوتی انتری با کمانچه کش و دنبکزن و انتر به در خانه آمدند و نوکر زردنبو که انگار منتظر بود آمد در را باز کرد و آنها را به گوشه حیات بیرونی برد. بیرون گوشه تکیه پسرک چندین بار از فکرش گذشته بود که بیاید جلو. باز در حیات را بزند سراغ پدر و مادرش را بگیرد. اما هنوز جای چماغ نوکر زردنبو روی لبهای باد کرده و دهان خونالودش سوزش داشت. هشت صفحه سی بعد از ظهر پس از ساعتها انتظار تلخ او تازه بلند شده بود. با این اراده که به قیمت چوب و چماغ آلبالو هم که باشد بیاید باز در بزند و از اهل خانه بخواهد پدر و مادرش را به او نشان بدهند. که دومین رویداد اهمیت سرنوشت دو روز اخیر به او کمک کرد. دید که در خانه مجاور باغ ملکارا باز شد و زن چادری شیکی با یک بچه کوچک و یک دخترک ندیمه از آن خانه بیرون آمد جاوید آنها نیز مانند سایر رهگذران کوچه با اندکی دقت نگاه کرده بود با این تفاوت که زن چادری شیک پس از دیدن پسرک به سوی او آمد از او پرسید که او پسر فیروزاقا تاجر یزدی نیست جاوید دلش ریخت با ادب و کمی با دست دستپاچگی جلو آمد سلام کرد و گفت بله بله و فوری صدای آن زن را شناخت صدای سرعی خانوم دختر بیوه ملک آرا بود و بقیه ماجرای آن بعد از ظهر با سرعت رعدی شوم گذشت. خانوم جوان چند کلمه ای از حال و احوال عجیب پسرک پرسید. جاوید شرح حال دیشب تا امروز بعد از ظهرش را گفت. عشق چشمانش را میسوزند، نه از زجر و خفتهایی که صبح تا حالا با او روا داشته بودند. بلکه از شوق مهر و نیکی این زن مهربان سرعی خانوم پسرک را با خودش به در خانه ملکارا آورد تا بفهمد چه به روز پدر و مادر او آمده است روشن بود که او خود خبر درستی نداشت به ندیمه بچهش سپرد که بچه را بغل کند همانجا گردش بدهد ندیمه که خود دختر بچه ای دوازده سیزده ساله بچه چادری بود گفت چشم خانوم و بچه را بغل گرفت. سریا خانم آمد جلوی در حیات پدرش ایستاد. کوبه در را محکم به صدا درآورد. در خانه دوباره باز شد. باز سر و نوکرباشی زردنبو بیرون آمد. صدای ساز و آواز لوتی انتری از گوشه باغ ادامه داشت. به دیدن خانم چادری نوکر زردنبو سلام و تعارف تراقی کرد. کنار رفت که خانوم وارد شوند با تعظیم و چاپلوسی به خانوم اطلاع داد که آوردن لوتی انطری با کسب اجازه از حضرت اشرف بوده چون ختنه سوران بندزاده زاده نوکرباشی بود شریه خانوم به این مطلب اهمیت نداد همان دم در از نوکرباشی پرسید قلوملی از پدر این بچه چه خبری هست بهش خبر بدید قلوملی با منمن گفت عرض شود چرا معطل و سرگردانش کردین؟ گناه داره این همه راه آمده، بیچاره شده؟ قلومالی نوکرباشی جلوتر آمد، در گوش سرعی خانوم یا دوروبر گوش سرعی خانوم از پشت چادر چیزهایی گفت. پسرک کندکی دورتر از زن جوان ایستاده بود، حرفهای او را درست نمی‌شنید. فقط عبارات پراکنده ای از قبیل مکافات داریم یا آقا گفتند به نحوی سر و را هم بیارید و نمیخواهند سر و صدایش در بیاید به گوشش خورد و لحظه به لحظه دلش از ترس و از احساس خبر بد گواهی میداد به دستور سریا خانم رفتند میرزا از اسقرخان مباشر را آوردند که گوشه ی حیات بیرونی اتاق و دفتری داشت میرزا از با اصا و لبباده سیاهش آمد. او هم سلام و تعظیم کرد. چند تا صرفه کرد. به اطلاع سرکار الیه خانوم کوچک رساند که حضرت اشرف آن روز صبح اوقاتشان تلخ بود و آنها ترسیده بودند حرف بزنند و مطلب تازه ای را میان بکشند. اما پیش از ظهر قبل از حرکتشان به طرف مجلس وقتی سربسته شنیدند که پسر یارو آمده دستور دادند که خفش کنند. هر طور شده سر و ته ماجرا را به هم بیاورند. به هیچ بچه منال الوجوه سر و صدا در نیاورند. چون برای اسم و رسم آقا خوبیت نداشت که چنین چیزهایی به گوش همه برسد. مگر نه اینها گبر و کافر و آتش پرست بودند. مردم چه خواهند گفت. پسرک با چشم های مبهود به آنها نگاه می کرد، گوش می‌داد. داد. سرای خانم که حالا صورتش باز بود و با عصبانیت به این مردها نگاه می کرد، گفت بابا این بچه حیونی گناه داره. هرچی هست آدم انسانه. حق نداره فامیلش رو ببینه. میرزا از گفت چشم اگر شما دستور بفرمایید چشم اطاعت. سرعی خانم گفت به این بچه باید کمک کنید. باید هر طور شده همه چی رو به او بگویید که آخه بفهمه چطور شده. میرزا از گفت چشم خانم البته بله بله. بعد گلویش را صاف کرد و برگشت توی صورت پسرک نگاه کرد. او هم از اللهی گفت و روی زمین تف کرد. چون سرعی خانم هنوز ایستاده بود مباشر خودش را نگه داشت. صرفه دیگری کرد و گفت گوش پسر، پدرت اینجا پیش از اید توی خونه آقا فوت کرد. جاوید به لبهای قهوه‌ای تیره او چشم دوخته بود. اما حضرت اشرف چون قلب رحیم و باز و مغز فهمیده دارند، نخواستند مادر تو رو و بچهش رو توی کوچه جلوی سکها بیاندازند. تو نمیدونی تو این محله و این محیط شهر توی این دنیای وانفزا مردم با گبرها چه کار میکنند. میدونی؟ پسرک سرش را تکان داد. زبانش بند آمده بود. در چشمهایش عشق حلقه میزد. میرزا از قرخان گفت. آقا چون قلبشون دریای رحمت و کرامت و نجابته دستور فرمودند با همه کفر و گناهی که نگه داشتن گبر را آتش است توی خونه یه مسلمون نماز خون داره، مادر تو و بچهش را توی انبار مطبخ نگه داریم تا یکی بیاد دنبالشون. جاوید گفت من آمدم. اما حالا تو تو انجوزک فسقلی چیزمیزی داری؟ پول مولی داری اونها را برگردونی یزد یا هر خراب شده ای که میخوای؟ نگاهی به کیسه کوچکی که پسرک زیر بند سجره بسته بود انداخت. لابد حد زد باید آن کیسه چه باشد؟ قلومالی زردنبو هم متوجه کیسه پول پسرک شده بود. گفت آره با داشته باشه خوب داره. پسرک با گریه فقط سرش را پایین آورد که دارد. سریا خانم گفت، خب، خدا حافظ پسر جون در امان خدا. وقتی دختر ملک آرا رفت، رفتار و لحن میرزا از قرخان ناگهان تغییر کرد. آمد جلو دست انداخت گوش پسرک را چسبید و کشید. انگشترهای دستش لاله گوش پسر کوچک را قل بکن می کرد. گفت، پدر سخته تخم تخمنا بسم الله گوش کن، اگر یک کلمه از چیزهایی که اینجا می بیرون به زبون بیاری، هر جای دنیا باشی، پدر پدر را خودم به آتیش می سوزونم. چشم یادت نره. لاله گوشه او را تقریبا کند، خون انداخت. چشم چش. گوشه حیات هنوز صدای لوتی انطری بلند بود. میرزا از رو به قلوملی نکرباشی کرد و گفت قلوم علی خان به احمد بگو این انچوچک آتیش افروز رو به انباری مطبخ ببره و ننه و آبجیش رو بندازه جلوش از سخفر الله چه مکافاتی داشتیم قلوم علی گفت لا اله یا الله را بیفتین چشم چشمت بی بلا های بیا نانه احمد از گوشه حیات از میان جمعی که دور لوتی انتری حلقه زده بودند و با خنده و ولنگاری دست میزنند، زنی خپله و کوتوله جدا شد. آمد، زن چادر نماز گلباغالی شندرپندری دور سر و گردن و کمرش بسته بود. او در حقیقت زن قلومالی بود. قلومالی گفت، ننه احمد، اینو ببر توی انباری، بچه ی است اومده ببرشون ایشالله. باران توف بود که جلوی پای پسرک میریخت. ننه احمد با قرولوند گفت و چرا هرچی که کاری به من ارد میدن؟ قلومالی گفت یالا رابیفت. ننه احمد یک ه اح از ته حلقوم و سینش گفت اما فرمان برداری کرد. جاوید همراه افتاد. میرزا از قرخان گفت هی آتیش افروز. جاوید برگشت باز او را نگاه کرد. ننت سکته کرده از زبون افتاده تو هم بهتر همونطور که گفتم از زبون بیفتی. وگرنه خودم با چاقوم میام سراغت میشنافی؟ بله، بفهم. سرش را پایین انداخت، صورتش از اشک خیس بود اما پیشانیش میسوخت. در این فکر بود که آیا در این روز شوم خبر تلخ و فاجعه دیگری هم منده بود که به سر او کوبیده شود؟ در یک ثانیه فکر کرد بپرد و چشمهای کرمائی بدجنس را از کاسه درآورد اما دنبال چادر گلباغالی ننه احمد به سوی جایی که خانوادهش را نگه داشته بودند راه افتاد از میان حیات بیرونی گذشتند از دالان درازی همرد شدند که زیر قسمتی از ساختمان‌های حیات بزرگ بود وارد باغ شدند ساختمان اصلی و بزرگ و دو طبقه ملک‌آرا رو به قبله در انتهای باغ بود در دو سمت چپ و راست این ساختمان هم اتاق‌هایی بود از میان باغ هم گذشتند که برای جاوید کابوسی بود زیرزمین‌ها و مطبخ و انباری قدیمی زیر اتاق‌های روبروی دالان بود وارد زیرزمین پشت مطبخ شدند زیرزمین و مطبخ اندکی روشن بودند اما پشت زیرزمین دخمه دراز دیگری بود که خرتوپرت متفرقه مطبخ قدیمی و تخته های را نگهداری می کردند. احمد از اینجا دیگر جلوتر نرفت. با دست به پسرک اشاره کرد که اونجان. جاوید پیش رفت. گوشه سیاه دخمه در اندک نوری که از مطبخ می آمد زن زنگی سفیدی را دید با صورت گچ مرده. و حلقه های سیاه دور چشم. زن دیوانه وار و ترس خورده، مانند یک حیوان زخمی، گوشه ای روی یک تکه چادر چنباتم زده بود. موهای کمپشته او آشفته، ریش ریش و تنک تنک بود. مانند موجودی که سالها کنجی نشسته باشد و با گریه و جنون موهای سرش را مشت مشت کنده باشد. زن بچه ساله و اسکلتوار و زردی را به سیناش می فشرد. ز نکی سفید.